شنیدم سخنی خوش که پیر کنان گفت فراغ یار نه آن می کند که بتوان گفت حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر کنایتیست که از روزگار هجران گفت نشان یار سفر کرده از که پرسم باز؟ که هر چه گفت برید سباب پریشان گفت فغان که آن مهنا مهربان مهر گسل به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب که دل به درد تو خوب کرد و ترک درمان گفت غمه کوهن به می سال خورده دف کنی که تخم خوشدلین است پیر دهغان گفت گره به باد مزند گرچه بر مراد رود که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت به محلتی که سفه ردهد رد زراح مرو را که گفت که این زال ترک دستان گفت مزنز چون و چرا دم که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت که گفت زدن دیشه تو آمد باز من این نگفته امان کس که گفت بختان گفت